پهی و, و دو بعد از اون که بازرگان از من سپاسگزاری فراوان کرد به سخن ادامه داد و گفت من همه حقیقت را به تو نگفتم و چیزی را از تو پنهان داشته بودم و این است که فیلهای این جنگل هر ساله تعداد زیادی از قلامان و بردگان ما را نابود می سازند و زیان هنگفت به اهالی وارد می‌کنند. و قلامان مای که به دستور صاحبان خود به شکار فیل می روند غالبا توسط فیل ها کشده می شوند. خداوند با تو بوده است که از شر فیل خشمگین جان سالم به دربرده ای و این را بزرگی است که پروردگار فقط درباره ی تو نشان داده است این زنده ماندن تو نشانه آن است که خداوند تو را دوست دارد و برای خدمت به انسانهای دیگر تو را زنده نگه داشته است تو ثروت و سود سرشاری به من رسانده ای ما ساکنین این دیار در این اواخر دسترسی به آج نداشتیم و درآمد ما به کسادی گذاشته بود، ناچارم برای به دست آوردن آج بردگان و های خود را به شکار فیلها که موجودات خطرناک و انتقام جویی میباند میفرستادیم و آنها هم همگی توسط فیلها به قتل می رسیدند. اما با خدمت بزرگی که تو انجام داده ای، تمامی اهالی را به ثروت خوشبختی رسنده و همه از گورستان فیلها بهرهمند می شوند. اگر تو نبودی و این ماجرا اتفاق نمیافتاد و هر روز بردگان ما باز هم کشته میشدند. شدند نگاهی از روی حقشناسی به من کرد و گفت علاوه بر آزاد بودن ثروت سرشاری هم به تو خواهم داد و برای این منظور همه احادی شهر را وادار خواهم کرد که به نشانه قدردانی از تو سهمی از ثروت خود را به تو ببخشند انجام این خدمت به تو است و باعث افتخار و سربلندی برای من خواهد بود گفتگوی من منو بازرگان که به اینجا رسید به او گفتم ای سرور من همین که مرا از بردگی و اصارت آزاد می‌سازی برای من یک دنیا ارزش دارد و نیازی به کمک مالی ندارم تا با آزادی من دین خود را نسبت به من ادا کردی و من غیر از این هیچ انتظاری ندارم جز آن که آزاد باشم و به زادگاه و کشور خود برگردم با شنیدن درخواست من مرد بازرگان گفت بسیار خوب همین که بادهای موسمی شش ماهه از سوی مشرق شروع به وزیدن کنند در مدت بسیار کوتاه کشتیهای مخصوص حمله آج را به بندر این شهر میرسانند و تو میتوانی با یکی از آن کشتیها به زادگاه خود سفر کنی من کلیه هزینه سفر تو را خواهم پرداخت من از بازرگان به خاطر آزادی خود و محبت‌های او سپاسگزاری کردم و در انتظار بادهای موسمی که شش ماه از مشرق و شش ماه بعد از مغرب خواهد وزید باقی ماندم در این مدت چندین بار با فیل به گورستان ها رفتم و آنقدر آج با خود به شهر آوردیم که انبارهای خود را از آج انباشته کردیم. همه بازرگانانی هم که در کار دادو ستد آج بودند، از این فرصت طلایی بهره کامل گرفتند. سرانجام کشتی‌های دادو ستد آج در بندر لنگر انداختند و بازرگان خودش که از کشتی‌هایی را که بیشتر مناسب می‌دانست برای مسافرت من انتخاب کرد و نیمی از فضای کشتی را انباشته از آج کرد و به من گفت این آج ها متعلق به تو هستند و سپس آذوقه و توشه یه سفر به حد فراوان برای من در کشتی گذاشت علاوه بر آن بازگان هدایای گرانبها و کم نظیری که فقط در این شهر یافت میشد، به عنوان قدرشناسی به من داد و من بعد از هزاران بار سپاس از او خداحافظی حافظی کردم و بر کشتی سوار شدم ناخدای کشتی بادبان ها را کشید و سفر دریایی دراز خود را آغاز کرد من هم به فکر فرو رفتم که این بار چه ماجراهای عجیبی برایم پیش آمد و چگونه در بازار برد فروشان به فروش رفتم و چه بازرگان نیک نفسی مرا خریداری کرد و بالاخره چگونه آزادی خود را و این همه ثروت را به دست آوردم. به عظمت پروردگار و سرنوشت خود میاندیشیدم. هنگامی که به بندر ترافیرما در هندوستان رسیدیم، لنگر انداختیم تا مواد غذایی تازه و های خوب از آنجا تهیه کنیم. من ماهیل نبودم که دوباره با کشتی و از راه دریا سفر خود را به بندر بسره ادامه دهم زیرا می که گرفتار طوفان و یا دزدان دریایی شویم. لذا بارهای آج خود را از کشتی بیرون آوردم و تصمیم گرفتم ازم بندر از راه خشکی خود را به بندر بسره و سپس به بغداد برسانم. در همون بندر اشیاء و لوازم کم نظیری برای سوقات خریداری کردم و همراه کاروانی که آزم بسره بود راه افتادم. کاروانی که به آنها پیوستم تجاری بودند که قصد سفر و تجارت داشتند با وجود اینکه در طول راه با سختی‌های بسیار روبرو بودیم با صبر و شکیبایی همه را برخود هموار کردم و با مصاحبت و همسفری بازرگانان خود را سرگرم کردم و دیگر کمترین ترس و نگرانی از طوفان دریا، دزدان دریایی و مارهای حیولا و خطرناک دیگر نداشتم خستگی راه از بدنم زدوده شد و صحیح و سالم و بدون نگرانی به شهر بغداد رسیدم بلادرنگ به حضور خلیفه رفتم و شهر سفر و حجوم دزدان دریایی و بقیه حقیت را به عرض خلیفه رساندم خلیفه گفت وقتی دیدم مدت زیادی سپری شد و تا هنوز به بغداد برنگشتهی نگران شدم چون تکیر تا از حد معمول بیشتر بود از خدا میخواستم که هر کجا هستی سلامت باشی هنگامی که که درباره‌ی فیلها و کاری که فیلها با من کرده بودند و مرا به گورستان خودشان بردند شهر دادم، خلیفه از حیرت و شگفتی دهانش باز ماند و گفت: ای اسنباد، هراینه‌ای کسی غیر از تو درباره‌ی فهم و در هوش فیلها برایم همین سرگذشت را تعریف میکرد هرگز نمیتوانستم آن را باور کنم. اما چون به پاکدامنی و درستی و صمیمیت تو ایمان دارم، قبول میکنم آنگاه خلیفه به مرشیان و تاریخ‌نیسان خود دستور داد این شرح حال بیمانند و شگفتنگیز و همچنین سایر سرگذشت را که در طول سفرهای دریایی هم رخ داده بود با حروف زرمین به سب رسانند و در دستگاه و خزانه خلافت نگهداری کنند تا آینده از آن چه گذشته است آگاهی حاصل کنند. من با کس و اجازه از خلیفه مرخص شدم در حالی که احساس آرامش و آسودگی می‌کردم، و از را مأموریت خود با پیروزی خوبی به پایان پای و با حدایه به ها و کم نظری درباره خلیفه را ترک می کردم خوشحال بودم از این پس در نهایت آسایه شده فاه مالی روزگار را در کانون خانواده و در کنار دوستان و خیشان می گذرانم و هرگز دیگر به فکر دریا و مسافرت های طولانی و پرخطر نخواهم بود در اینجا سندباد شرح هفتمین و آخرین سفر خود را به پایان رسانید و در حالی که رو به هندباد می کرد بیان داشت دوستان آیا از کسی شنینده اید و یا دیده اید که کسی دچار این همین گرفتاری و خطرات مرگ آفرین شده باشد و با موجزه خدایی از تمام صحنه های مرگ بار جان سالم به در برده باشد؟ آیا اینک پس از این همین گرفتاری ها و صفی ها سزاوار زندگی راحت و آسوده ای نیستم؟ و پس از آن همه خطراتی که به من روی آورد و تا نزدیکی مرگ مرا پیش برد حالا سزاوار آن هستم که زندگی آرامی داشته باشم؟ هندباد پس از شنیدن سخنان سندباد به او نزدیک شد و دست سندباد را در دست گرفته بوسید و اظهار داشت ای مرد را بارو باستخابت باید قبول کنم که تو با سختی ها و مصیبت های فراوانی روبرو بوده ای و خطرهای بزرگی را از سر ای مشکلاتی که من تا قنون داشتم با آنچه که تو شرح دادی قابل مقایسه نیست تو نه تنها استحقاق زندگی آرام و سری را داری. بلکه حق داری ثروت بی پایان داشته باشی زیرا آنچنان با سخاوت و بزرگ و از ثروت خود دیگران را بحرمند می و توهی را یاری می کنی که هر قرش هم داشته باشی کم خواهد بود از خداوند می‌خواهم که سروت تو را روزافزون کند که از هر روز زندگی شادی خوشی فراوانی ببری و از نیمه تندرستی دائمی بحرمند باشی و گشاد دستی تو نیز روزافزون باد که تویی دستان به نان و نوایی برسند و در پرتوی بخشش تو آنها هم بینیاز شوند سندباد در این هنگام یکصد عدد سکه طلا علاوه بر یکصد عدد سکه طلا که هر بار به هند باد میداد به او پرداخت و گفت تو از این پس در زمره دوستان من درآمدی آمدی و جاز و یاران من هستی دیگر نیازی به کار بار بردن و زحمت کشیدن نداری هر شب به این خانه بیا و دوره هم به شام در محیط خوب و آرام. همراه با نقمه و نوای ساز مشغول شویم. با این ترتیب، هندباد حق داشته است که هیچگاه خاطره یه سندباد بحری را به دست فراموشی نسپارد شرساد که میدید هنوز صبح نشده است به ادامه سخن خود پرداخت و داستان دیگری را آغاز کرد. داستان عجیب سه دانه سیب شرساد پس از این که داستان و سندباد بحری را به پایان آورد، داستان دیگری به شرح زیر آغاز کرد و بیان داشت «هارون رشید عادت داشت که شخصا شبها به همراه وزیر بزرگ خود جعفر برمکی و رئیس تشریفات دربار خلافت و رئیس داروگه خود در کوچه و خیابان گردش کند و از پرسش‌هایی و پرسش درباره رفتار معمولین دولتی به عمل آورد تا بدانند که مردم از دستگاه حکومتی خوشنودند یا آن ابراز ناخشنودی خواهند کرد در یکی از این شبها که هارون و رشید و همراهان در کوچه های به گردش و جستجو پرداخته بودند، هارون و رشید چشمش به پیرمردی افتاد که سبری از برگ خورما بر روی شانه و توری برای ماهیگیری روی شانه دیگر دارد و مشغول گذشتن در همان کوچه است. هارون و جعفر جلو رفتند و جعفر پس از سلام و تعارف فرسید، ای پیرمرد، آیا از زندگی و کاری که میکنی خوشنودی؟ پیرمرد جواب داد نه زیرا من مردی ماهیگیرم که از اول بعد از ظهر تا پایان روز به ماهیگیری میپردازم و بیشتر اوقات هم چیزی به دام نمی افتد و مانند امروز دست خالی نزد زن و فرزندم برمیگردم خلیفه گفت یک بار دیگر دام خود را به دجله انداز و در مقابل آنچه که با دام خود بیرون آوردی من 300 سکه زر تو خواهم پرداخت پیرمرد با وجود خستگی تمام روز آن هم در زیر آفتاب خوشحال شد و گفت اگر یک صدم آن را هم به من بدهید من خشنود خواهم شد خلیفه و ماهیگیر و همراهان همگی به کنار دجله رفتند پیرمرد دام در آب انداخ و سپس شیء سنگینی در دام افتاد که پیرمرد با سختی آن را از دریا بیرون کشید. خلیفه زده جلو رفت و دید که سبدی بافته از برگ خورما در آن است او به وزیر دستور داد تا سیصد ست ضرب ماهیگیر بپردازد. وزیر سبد را گرفت و سیصد ست ضرب ماهیگیر پرداخت و ماهیگیر دنبال کار خود رفت. خریفه و همراهان با شتاب هرچه بیشتر به سوی قرش برگشتند و با عجله آن را باز کردند و دیدند بدن قطعه قطع شده زنی است که در پارچه پیچیده شده و آن را در داخل سبد پیچیده و با ریسمان بستند. خریفه پس از دیدن این صحنه در خراش برای شفت و پرخاش کنند وزیر فریاد کشید و گفت چگونه می میکنند در زمان خلافت من و وزارت تو به گونه مردم را بکشند و به دشله اندازند. تو باید زفه سه روز کسی را که به چنین گناه بزرگی شده است پیدا کنی و به کیفر برسانی تا ادالت اجرا گردد. وزیر پاسخ داد ای خریفه بزرگ برای پیدا کردن گناهکاری که هیچ گنه نشانی از او در دست نیست سه روز کافی نخواهد بود. مهرت بیشتری به من مرهمت کنید. خلیفه گفت: فقط سه روز، اگر نتوانستی آن وقت دستور خواهم داد تا خودت را به داره مجازات بیاویزند وزیر با تشویش و نگرانی به خانه برگشت و همه شنی فکر بود که چگونه از عهده این کار برایت؟ من باید گناهکار واقعی را به حضرت خلیفه معرفی کنم و شاید هم تا این ساعت گناهکار واقعی از این شهر بیرون رفته باشد من نمیتوانم به خاطر خوشنودی خاطر خلیفه یکی از زندانیان را به عنوان قاتل این زن تسلیم خلیفه کنم تا به دار مجازات آویخته شود وجدان من اجازه چنین کاری را به من نمیدهد و برای من بهتر است خودم کشته شوم تا بی‌گناهی بی‌جهت جان خود را از دست بدهد وزیر به همه مامورین و نگهبانان و نیروی انتظامی کشور و سایر افراد دستور داد که به جستجوی قاتل بپردازند و خودش نیز به کاوش و جستجو پرداخت. با این همه کوشش و تلاش سرانجام نتوانست پس از پایان سه روز قاتل را دستگیر کند. روز سوم که به پایان رسید، وزیر نزد خلیفه رفت و با چشمانی گریان نتیجه را گزارش داد. خلیفه بسیار خشمگین شد و به وزیر داسزا و دوش آب داد. و دستور داد وزیر و چهلتن از نزدیکان و خیشان او را به دار مجازات بیاویزند. وزیر و چهلتن از خیشان او را در پای دار آوردند و تناب به گردن آنها انداختند و همه مردم را هم توسط جارچی خبر کرده بودند تا برای تماشای دار زدن آنها در میدان مقابل قرش گرده هم آیند. مردم که علاقه و احترام بسیاری برای وزیر احساس می کردند و می که دیاغت و کاردانی و تدبیر و ادالت خواهی و بی‌قرضی او مانند ندارد از این صحنه بسیار ناخوشنود و متأثر بودند و به خاطر وزیر که تا چند دقیقه دیگر تسلیم چوبه دار میشد گریه می کردند و درخواست آزادی او را می کردند شهرت و محبوبیت وزیر تنها در شهر بغداد نبود بلکه در کلیه سرزمین ها و کشورهای زیر حکومت خلیفه همه او را از جانده دوست داشتند و احترام میگذاشتند بدیهیس فرمان خلیفه حتمی و غیر قابل تغییر بود و هیچ عاملی توانست جلوی اجرای آن را بگیرد درست در همان لحظه‌ای که میخواستند طناب دار را بالا بکشند جوانی خوشسیما دوان دوان نفس زنان خود را به وزیر رسانید و گفت من آن زن را كشتهام و آمدهام خود را تسلیم کنم تا ادالت دربارم اجرا شود هنوز سخنان جوان به پایان نرسیده بود که مرد نسبتاً مسنی هم نزدیک وزیر آمد و گفت ای وزیر این جوان دروغ می گوید. من قاتل آن زن هستم. بعد رو به جوان کرد و گفت من عمر خود را کردم ولی تو در آغاز جوانی هستی و آینده درازی را در پیش داری. اجازه بده تا من خود را فدایی تو کنم. وزیر مپود شده بود و به هر دوی آنها نگاه می‌کرد که تا به فهمت کدامشان درست می‌گویند. گرچه در دل خوشحال بود که به هر حال یکی از این دو مرتکب کشتن آن زن شدهاند ولی به نظرش آمد که جوان آدم راستگویی به نظر میرسد. فکر کرد برای تصمیمگیری بهتر آن است که هر دو را نزد خلیفه ببرد. وقتی همگی نزد خلیفه رفتند، وزیر ادای احترام کرد و آن جوان آن آن پیرمرد دوباره خود را قاتل آن زن معرفی کردند. خلیفه هم به وزیر دستور داد هر را بدون مجازات بیا بیزند. وزیر رو به خلیفه کرد و گفت یا امیر یک نفر کشته شده است و قاتل هم یک نفر است و کشتن دو نفر برخلاف ادادت و عقل می باشد آنگاه جوان گفت من این زن را چهار روز پیش کشتم و بدن او را چهار قطعه کردم و در گونی پیچیدم و در درون سبد برگ خونمان گذاشتم و به رود دجله انداختم و راست میگویم می گویم خدا را ببخشد؟ و نه یا اگر دروغ بگویم من وجدانم ناراحت است و اگر مرا را بخوشید آسوده خواهم شد و اگر هم کسی باید به کیفر مرگ برسد آن من هستم خلیفه سخنان جوان را بیشتر قابل اعتماد دانست خصوصا که مرد مسن پس از توضیحات مرد جوان خاموش ماند و دیگر پاسخی به آن نداد آنگاه خلیفه رو به جوان کرده و گفت ای بیچاری بدبخ چه شد که تو این زن جوان را کش گناه او چه بود علت را توضیح بده. جوان در پاسخ سخنان خلیفه گفت ای امیر اگر آنچه را که بین من و این زن گذشته است برایتان شرط هم به قضی ناراحت کننده و در این حال شگفت آور است که باید دستور دهید در کتاب‌های تاریخ نوشته شود. خلیفه فرمان داد تا جوان شرح ماجرا را بیان دارد جوان چنین گفت داستان زن جوانی که به دست شوهر خود کشته شد ای حضرت خلیفه، زنی که جنازه او را در دشته پیدا کرده اید همسر من است. این زن دختر من و این مرد موسم پدر اوست که عموی من می باشد. دختر یازده ساله بود که من با او ازدواج کردم. یک دیگر را به حد پرستش دوست داشتیم. از این زن سه فرزند دارم. سال است که ازدواج کردم و در سراسر این ایام همسرم به من وفادار بوده و تمام کوشش خود را در راه خوشبختی و آسایش من به برده است من هم با تمام وجودم به او عشق می ورزیدم و هرچه میخواست برایش فراهم میکردم در حدود دو ماه پیش همسرم بیمار شد و من برای بهبودی او هر کاری که از دستم ساخته بود کردم تا اینکه حالش بهتر شد و رو به بهبودی رفت و خواست به گرما برود قبل از رفتن از من خواست که برای او سیب تهیه کنم زیرا مدت ها بود که دلش سخت هوای سیب کرده بود و اگر سیب به اون نرسد ناراحت خواهد شد و فکر می کند حالت بدی برایش پیش خواهد آمد من هم گفتم با کمال میل برایش تهیه خواهم کرد بلافاصله فاصله به بازار رفتم و همه دکانها را در سراسر سر شهر زیر پا گذاشتم و با وجودی که حاضر بودم برای هر دانه سیب نیم سکه طلا بپردازم پردازم موفق نشدم و دست خالی به خانه برگشتم وقتی همسرم از گرماوه به خانه آمد و فهمید از سیب خبری نیست، بسیار ناراحت شد و از ناراحتی نتوانست بخوابد. همین که صبح شد، به دنبال سیب از خانه بیرون رفتم و همه باقه های اطراف شهر را جستجو کردم و سیب خبری نبود. ولی باغبان پیری به من گفت، فقط در باقی خلیفه در شهر بستر ممکن است سیب یافت شود. من هم لباس سفر کشیدم و به بسر رفتم، پانزده روز در راه بودم بالاخره به باغ خلیفه رفتم. در اونجا فقط سه دانه سیب یافتم و هر دانه را به نیم سکه زر خریدم و به خانه آوردم. وقتی سیب ها را به همسرم دادم دی دیگران شوق و هووض را از دست داده بود. فقط آنها را در کنار خود روی زمین گذاشت و چون بیماریش دوباره به سراغ او آمده بود در بستر استراحت کرد. چند روزی از این قضیه گذشت و روزی در جاکان خود نشسته و به رفت آمد مردم نگاه می کردم. ناگهان چشمم به برده زشرو و سیاهی افتاد که سیبی در دست دارد فورا متوجه شدم که یکی از آن سیب هاست زیرا در هیچ دکانی و در هیچ باقی آن فصل سیب یافت نمی شد برده زشرو را صدا زدم و از او پرسیدم این سیب را از کجا آورده ای؟ او در پاسخ گفت این حدیه است که من هم به من ارزانی داشته امروز نزد او بودم، حالش خوب نبود و دیدم سه دانه سیب در کنارش روی فرش است. به من گفت این سیبها را شوهرش برای او هدیه آورده و برای تهیه آن پانزده روز در مسافرت بوده تا آنها را به دست آورده. او یکی از آنها را به من هدیه کرد. من با شنیدن این سخنان خون چشمائیم را گرفت و دیوان وار در حالی که در آتش حسادت میسوختم دکان را بستم و به خانه رفتم. به اتاق همسرم رفتم و دیدم فقط دو دانه سیب در کنار اوست. پرسیدم یک دانه دیگر کجاست؟ همسرم در حالی که سر خود را به طرف سیب ها برمی با سردی جواب داد نمیدانم چه بر سر آن یکی آمده است. من که مطمئن شده بودم سخنان آن غلام سیاه حقیقت دارد دیوانه شدم و کارد از کمر کشیدم و سر زنم را از بدن جدا کردم. و بعد پیکر بیجان و خونالود او را چهار قطعه کردم و آن را در پارچهای پوشاندم و در سبدی گذاشتم و آن را با ریسمان بستم و به رود دجله انداختم پسرهایم خواب بودند و سومی بیرون از خانه بود وقتی به خانه برگشتم دیدم پسرم دمه در نشسته و گریه میکند علت گریهاش را جویا شدم پاسخ داد پدر امروز صبح من یکی از آن سیب هایی که در کنار بستر مادرم بود بدون اجازه اش برداشتم و مدت‌ها آن را با خود داشتم بعد از آر با برادر کوچکترم در کوچه بازی می کردم غلام سیاهی از آنجا رد می شود. ناگهان آن را از دستم را بود و فرار کرد من دنبال او دویدم و التماس کردم سیب را پس بدهد به او گفتم این سیب را با دو سیب دیگر پدرم برای مادرم تهیه کرده که پانزده روز برای تهیه آن به سفر رفته و آنها را آورده و در کنار بستر مادرم که بیمار است گذاشته بود من امروز این یک دانه را بی اجازه او برداشتم ولی غلام سیاه توجهی به درخواست من نکرد و رفت وقتی پسرم این سخنان را گفت از شرمندگی و پشیمانی از کار نسنجیده خود بی نهایت ناراحت شدم و دنیا در نظرم تیره و تار شد خود را سرزنش کردم چرا به سخنان سیاه اعتماد کردم و دروغهایش را باور کردم و زن هم را به دست خودم از بین بردم اما من که در اینجا حضور دارد و پدر همسر من است به خانه من آمد و زیدن جنازه دخترش و شنیدن سخنان سیاه به جایی سرزنش کردن او هم مانند من به گریه افتاد او به خاطر از دست دادن فرزندش و من هم به جهت آنکه زن زیباب و فداکار خود را کشته بودم جوان پس از این سخنان گفت ای فرمون روای مسلمین اظهارات مرا شنیدید اینکه از شما خواهش دارم به خاطر جنایتی که کرده ام به دار مجازات بیاویزید و از ناراحتی وجدان رحوییم بخشید من بدون کمترین ناراحتی یا شکایتی آن را با جان و دل میپذیرم. خلیفه که سخت در بخت فرو رفته بود دلش به حال جوان بهرحم آمد و گفت عمل این جوان در نزل خداوند قابل بخشش است زیرا قصد کشتن همسر خود را نداشته و سخنان دروغ آن غلام سیاه احساسات او را برانگیخته و دیوان وارد چنین عملی از او سر زده است در حقیقت آن غلام دروغاو قاتل واقعی است و باید مجازات شود در اینجا باز خلیفه وزیر را مخاطب قرار داد و به او گفت سه روز مهلت داری تا آن غلام سیاه پلید را دستگیر کنی و به حضور بیاوری و اگر نتوانی او را پیدا کنی خودت را به جای او خواهم کشت. وزیر که جابه تصور میکرد با سخنان جوان خطر مرگ از او دور شده است دستور جدید خلیفه دوباره گرفتار نگرانی و تشویش شد. زیرا فکر میکرد در شهر پرجمعیت بغداد، بقداد و آن همه گلام سیاه و برده چگونه میتوان غلام سیاه به خصوصی را در میان آنها پیدا کرد. ولی با خود گفت به خواست پرورد بار همانطور که این جوان خود را معرفی کرد شاید غلام سیاه هم شود و از مرد دهوی یابم وزیر دو روز را رو در میان خانواده خود گذران، و تمام فرزندان و همچنین همسر او در گریه وزاری گذراندند و به خلیفه و ظلمی که در وزیر می زبان به شکایت گشودند روز سوم هم وزیر یکی از سردفتران را به خانه آورد و در حضور چند شاهد آخرین وزیسیت نامه خود را نوشت و ترتیب تقسیم دارایی و اموال خود را بین بازماندگان خود داد در همین موقع فرستاده خلیفه به خانه وزیر آمد تا او را به حضور خلیفه ببرد ولی در همین هنگام دختر شش ساله وزیر را نزده و آوردند تا آخرین دیدار انجام شود وزیر با اجازه فرستاده خلیفه دختر را در آغوش گرفت در همین لحظه احساس کرد که چیزی زیر پیراهن دختر پنهان است که ایجاد برآمدگی در روی سینه کرده است. از دختر پرسید این چیست؟ دختر پاسخ داد این یک دانه سیب است که ریحان غلام سیاه خودمان در مقابل دو سکه یه زب من فروخته و میگوید روی این سیب نام خلیفه نوشته شده است. وزیر خوشحال شد و از غلام سیاه خود جویا شد چگونه سیب را به دست آورده است؟ بولان پاسخ داد که من این سیب را از دست بچه‌ای که با چند بچه‌ی دیگر در کوچه بازی میکرد به بودم. پسر بچه دنبال من آمد و التماس کرد این سیب مال مادر من است که پدرم با دو سیب دیگر برای مادرم که هوس سیب کرده بود تهیه کرده است و این را به من پس بده. زیرا مادرم در حال حاضر بیمار است ولی می‌دانند که این سیب را من بدون اجازه او برداشتم. من هم سیب را به خانه آوردم و به مبلغ دو سکه طلا به دختر خانم کوچولوی شما فروختم این حقیقت مطلب است وزیر که میدید دروغ یک غلام فرومایه چگونه سبب مرگ زن بیگناه و سبب تهدید به مرگ خود او شده است غلام را به نزد خلیفه برد و داستان را برای او بیان کرد خلیفه از شگفتی حیرت کرد ولی ناگهان خندهاش گرفت بالاخره برخنده خود چیده شد و با قیافه جدی به وزیر گفت این غلام عمل بسیار بدی کرده و باید مجازات شدیدی که سزاوار آن است بشود تا دیگران از آن عبرت گیرند وزیر گفت خلیفه به سلامت باشد این غلام عملی که کرده نابخ نابخشودنی نیست چون غلام من است او را در اختیار من بگذارید داستان عجیبی به یادم آمد درباره وزیر مصر به نام نورالدین علی و بدرالدین حسن وزیر بصره و اگر خلیفه مایل به شنیدن آن باشند به یک شرط حاضرم آن را بیان کنم و آن این از که چنانچه حیرت خلیفه از شنیدن این داستان بیش از حیرتی بود که از عمل این قلام حاصل کردیده خلیفه قلام را مورد بخشش قرار دهند. خلیفه گفت من حرفی ندارم ولی تو وظیفه سنگینی را به عهده می زیرا باور ندارم به توانی قلام خود را از مرزه هایی بخشی. جعفر داستان را از این قرار شرح داد. در روزگاران قدیم پادشاهی در کشور مصر سلطنت میکرد که به عدل و داد تدبیر و سیاست شهرت فراوانی داشت و کشورهای همسایه او نیز از او حساب میبردند این پادشاه از فقرا پشتیبانی میکرد و دانشمندان را مورد محبت قرار میداد و آنان را به بالاترین مقامات اجتماعی و اداری می گماشت این پادشاه وزیر دانو و دانشمندی داشت که از تمام دانشها بهره فراوان داشت این وزیر با تدبیر دو پسر داشت که آنها را به بهترین وجه تربیت کرده و از لحاظ دانش و آگاهی مانند پدر خود بودند. فرزند بزرگتر شمس‌الدین محمد و فرزند نور نورالدین علی نام داشت. پس از مرگ وزیر، پادشاه فرزندان وزیر را به حضور خواند و ضمن تسلیت مرگ پدر به آنها گفت: چون شما دو برادر افراد شایسته و با کفایتی هستید و هر دو هم یکدیگر را دوست دارید، و در یک خانه هم زندگی می کنید من شما را به جای پدرتان انتخاب می کنم تا کارهای پدر را به عنوان وزیر دنبال کنید و در رفتار و تصمیمات خود روش و شیوه پدر را تقلید کنید دو برادر با فروتنی از پادشاه سپاسگزاری کردند و به خانه خود برگشتند و ترتیب خاکسپاری پدر را دادند مدت یک ماه به شیوه احترام و عزاداری در خانه نشستند و پس از آن مرتبا در دربار حاضر می شدند